طرف های غروب نن فاطمه روی بام نشسته بود و سیاهی بزرگی را که از سید آباد می تماشا میکرد. فاطمه فکر می کرد که لابود باز در سید یکی مرده و سید با گاری مشتی رقایه می‌روند حاجی حاجیاخون را از جامیشان برای نماز به آبادیشان ببرند اما سیاهی هرچه نزدیکتر نزدیک‌تر میشد. بزرگتر و پهنتر میشد. کنار تپه نبی آقا که رسید، نن فاطمه باد سیاه و چرکی را دید که چیز سفیدی را با خود میآورد. دوان دوان روی بام مشتی سفر رفت. سرش را از سوراخ بام برد تو و با صدای بلند زن مشتی سفر را صدا کرد. ننه خانوم، ننه خانوم، بیا بالا ببین این دیگه چیه که میاد طرف بغل؟ روی بام خودشان برگشت. پاهایش را از سوراخ آویزان کرد تو و دستهایش را گرفت به لبه سوراخ و با وحشت به سیاهی خیره شد. روی بام خانه مشری سفر اول کله ننه خانوم پیدا شد و بعد کله مشری سفر که آرام آرام آمد بیرون. نن خانوم تند تند دوربرش را نگاه می و چیزی نمی دی. ننه فاطمه گفت اونها از سعیداباد میاد آنجا را نگاه کن نبی آقا را نگاه کن باد دور نبی آقا چرخ میزد و سفیدی را با خود میچرخاند. ننه خانوم گفت چند وقتی که آنجا میچرخه ننه فاطمه گفت همین حالا پیداش شده ننه خانوم چشمایش را تند کرد و دعا خاند و فوت کرد به بیل و برگشت و به ننه فاطمه گفت خاک به سرمون شد بیچاره شدیم هردو با وحشت سیاهی را که از بیراهه به طرف جاده میآمد نگاه کردند ننه فاطمه بلند گفت ننه خانوم سفیدیا رو می بینی؟ ننه خانوم گفت آره میبینم ننه فاطمه گفت داره بزرگ میشه تا برسه اینجا تمام بیل رو میگیره بوی کسی فتوندی همه جا پیچید و با داخل ده شد و مقدار زیادی کهنه که با آورده بود توی کوچه ها و پشت بام ها پاشید. ننه خانوم گفت برو پایین ننه فاتمه بوی گند خفمون کرد. ننه فاتمه گفت بیا پایین لب استخر ببینیم چه خاکی به سر میکنیم. هر دو رفتند پایین. ده خلوت بود. مردها و زنها از ده رفته بودند بیرون ننه فاطمه و ننه خانوم آمدند جلوی خانه بابا علی که چهار دیواری کوچکی با یک دربچه بود و صدای ناله و زاری بابا علی از آن تو بلند بود نن خانوم گفت بورا میشنوی چه کار بکنیم؟ ننه فاطمه گفت میترسم آنهایی که بیرون رفتن نتونن با آبادی برگردن نن خانم گفت، اینا رو میبینی؟ خم شد و تکای پوسیده کنه را که باد آورده همه جا پاشیده بود نشان داد. ننه فاطمه گفت، مثل اینکه از چند قبرستون رد شده و همه را جمع کرده و آورده. و در حالی که از وحشت میلرسید، نشست روی سنگ سیاه مرد شوری و تکیه داد به درخت بید. نن خانوم هم نشست و پاهایش را جمع کرد زیر چادرش تا باد سرد کهناها را دور ساخهای لاغرش نپیچد. نن فاطمه گفت، فاطعه همه چیز خانده شده، اول قهتی و بعدش هم این. ناله ی بابا علی از توی چهاردیواری بلندتر شد. نن خانوم با دست اشاره کرد و گفت، میبینی؟ نن فاطمه گفت، بلند شیم بریم را خبر کنیم. ننه خانوم گفت، تو ده که کسی نمونده، تازه باید مشتی اسلام بیاد و همه را خبر کنه. ننه فاطمه گفت، من دلواپسم، خیلی هم دلواپسم، حسنی رفته و برنگشته. نگشته. ننه خانوم گفت، پسر منم رفته، دلواپسی نداره، همه بر می گردن. بلند شو بریم خونه، فانوس روشن کنیم و ببریم پشت بام تا گمشدها بتونن بگل رو ببینن. بلند شدند که بروند مردی از سیاهی کنار باغ اربابی پیدا شد زنبیل بزرگی به دست داشت و غوز کرده بود و پاورچین پاورچین از حاشیه دیوار پیش می آمد ننه فاطمه دست ننه خانوم را گرفت و گفت این کیه ننه؟ ننه خانوم گفت من که نمیشناسمش سیاهی آمد و رد شد و رفت توی کوچه اول ننه فاطمه گفت خیلی بی سر و صدا راه میرفت نکنه بره خونه‌ی من ننه خانم گفت بیا دنبالش بریم. هر دو پاورچین پاورچین پشت سر سیاهی رفتن توی کوچه از پیچ کوچه گذشتند و سیاهی را دیدند که جلوی در خانه‌ی مسجد جبار ایستاده صرفه میکنند در باز شد و مشتی ریحان خواهر مسجد جبار با فانوس پیدا شد سیایی خود را کنار کشید مشتی ریحان فانوس را برد بالا نور فانوس توی کوچه افتاد و کهانه های پوسیده را که به در و دیوار چسبیده و تکان تکان میخوردند روشن کرد نن فاطمه و نن خانوم خود را کنار کشیدند و توی تاریکی استادند نن فاطمه پرسید اون کیه؟ نن خانوم گفت مشتی ریحان خواهر مشتی جبار، همونی که شوهرش مرده چند قدم جلوتر رفتند و ایستادند سیاهی دست برد توی زنبیلی که به بازویش آویزان بود و مرغ کشتهی بیرون آورد پاهای مرغ را گرفت و جلوی فانوس نگاه داشت خواهر جبار دست دراز کرد پاهای مرغ را گرفت و رفت تو و در را بست سیاهی دوباره راهش را کشید و رفت به انتهای کوچه نن خانم و نن فاطمه پشت سرش سیاهی به خانه ننه فاطمه رسید، ایستاد و دست راست کرد و تنه کوچایی را که به دیوار کوبیده بود، گرفت و خود را بالا کشید. ننه فاطمه گفت: کجا میره؟ ننه خانم گفت: صبر کن ببینم. سیاهی به پشت بام رسید. خم شد و زنبیرش را از سوراخ بام انداخت تو و بعد پاهایش را برد توی سوراخی و آرام آرام خود را کشید پایین تنها سرش ماند بیرون که چند لحظه استخر را نگاه کرد و یک دفعه افتاد توی خانه ننه فاطمه گفت حالا چه کار کنیم هر دو برگشتند و دست یکدیگر را گرفتند و دوان دوان آمدند کنار استخر تکای کنه بر های بید میلرسید از توی سیاهی عدی پیدا شدند که زنبیل به دست آمدند ننه فاتمه و ننه خانوم رفتن توی خانه ننه خانوم مشی سفر رفته بود بالای کرسی تمام تنش توی اتاق و سرش از سوراخ سخف بیرون بود که دیده نمیشد. ننه خانوم و ننه فاتمه رفتن توی پستو دوتا فانوس برداشتند و آمدن توی اتاق هر دو را روشن کردند ننه خانوم از کرسی دیگر رفت بالا و یکی از فانوس ها را روی بام گذاشت بدن مشی سفر که بی حرکت بود تکان خورد و انگشتهایش شروع به حرکت کرد نن فاطمه و نن خانوم با فانوس دیگر آمدند بیرون کنار استخر شلوغ بود و یلی با زنبیل نیمه خالی وارد آبادی می شدند. اسلام نشسته بود روی گاری و رفته بود تو فکر نن خانوم رفت کنار گاری و گفت مشتی اسلام یه نفر آمده رفته تو خانه نن فاطمه اسلام گفت حسنی تو ده نیست؟ نن فاطمه گفت نه نیستش رفته بیرون اسلام گفت پس من با شما میام به خانه نن فاطمه که رسیدن اسلام فانوس را گرفت و در را باز کرد او خودش رفت تو و پشت سرش پیر زنها داخل اتاق تاریخ بود پنجره را که باز کردند اسلام فانوس را برد تو کسی به دیوار تکیه داده بود و از توی تاریکی آنها را نگاه می کرد. اسلام گفت کی هستی؟ سیاهی گفت منم مشتی اسلام. اسلام فانوس را برد بالا و گفت تو؟ سیاهی آمد جلو. زنبیلی به بازو داشت. هر سه جلوتر رفتند. نن فاطمه گفت توی حسنی؟ حسنی دست برد توی زنبیل و مرغ ای بیرون آورد کله مرغ از پوست باریکی آویزان بود و تکان تکان میخورد اسلام گفت نن فاطمه پسر رو هم نمیشناسی؟ پانوس را داد دست نن خانوم و با عجله رفت بیرون نن فاطمه دست دراز کرد و مرغ را از دست حسنی گرفت حسنی گفت یه دونه بیشتر گیرم نیومد قاخ قاخ خندید طوری که پیر ترسیدند و عقب عقب رفتند مرد بیشترشان دست خالی برگشته بودند مشری جبار کمی سیب زمینی از خاتون آباد گیر آورده بود و قبل از اینکه که پیدایش بشود مشری ریحان مرغ کشته را پشت ایزمها پنهان کرده بود مشری جبار گفت خاتون آباد خیلی شلوغ بود مشری ریحان گفت تو بیل که ایش خبری نیست مشتی جببار گفت آخو اونجا یه چیزایی پیدا میشه مشتی ریحان گفت مشتی بابا که رفته بود خلیجان دست خالی برگشته مشتی جبار گفت خیلی دست خالی آمدند. عباس مش برنج از سیداباد گرفته بود که نصفشو برد برای خودش و و بقیه رو داد به بابا علی مشتی ریحان گفت مشتی اصلا فقط یه بغل یونجه گیرش اومده بود که برد طویله و ریخت جلو گاوش. مشتی جبار گفت. کد خدام که هنوز بر نیشته. مشتی ریحان گفت. حالا میخوای چه کار بکنی؟ مشتی جبار گفت. امشب میرم پروس شاید چیزی گیرم بیاد. مشتی ریحان گفت. تک و تنها میخوای بری پروز. مشتی جبار گفت. آره دیگه. با کی میتونم برم؟ مشری ریحان گفت تنها که نمیتونی بری از نصف شب با انور پروسیا ها جمع میشن و موازه به آبادیشان هستن مشری جبار گفت هر جوری شده میرم آدقه دلیم و خالی میکنم تلافی گوسفندامو که بردن در میارم مشری ریحان گفت تنها نه تنها نباید بری مشری جبار گفت با هیچ کس نمیتونم برم و یلی ها همشون گدایی میکنن صدقه میگیرن از دزدیان که دست نمیکشن. مشتی ریحان گفت: میدونم. اما اگه گیرشون بیفتی مشی جبار گفت: آخه کسی نمیاد که با هم بریم. مشتی ریحان گفت: چرا؟ شاید پسر ننه فاطمه بیاد. مشتی جبار گفت: حسنی را میگی؟ مشتی ریحان گفت: آره. اگه به اون بگی حتماً با تو میاد. مشی جبار گفت: تو از کجا میدونی؟ مشی ریحان گفت: من میدونم. یه ساعت پیش گومت تو ده دیدمش. یه دونه مرغ دستش بود. مشی جبار گفت: یعنی میگی رفته بود پروس؟ مشی ریحان گفت: خیال میکنم. تو بشین شامت رو بخور. من میرم صداش میکنم. مشی جبار نشست جلوی هیزمها و فانوس را گذاشت بغل دستش. مشیر نان و شله گندم برایش آورد و از خانه رفت بیرون باد همچنان میوزید مردها کنار استخر جمع شده بودند و نماز می‌خواندند از پشت دیوار کوتاه یک ردیف زن هاشان را آورده بودند بالا و مردها را نگاه می‌کردند توی باغ اربابی یک نفر گریه میکرد مشیر دم در خانه حسنی که رسید ننه فاطمه و ننه خانم را دید که با کاسه آب تربت بیرون آمدند مشری خود را کنار کشید ننه فاطمه و نن خانم آمدند توی کوچه ننه فاطمه جاروی کوچکی را که دستش بود میزد به آب تربت و میپاشید به در و دیوار خانه ها و دعا میخواند. ننه خانم حق و حق گریه میکرد پیرزنها ها تا از پیچ کوچه گذشتند مشتی ریحان از توی تاریکی آمد بیرون و در را باز کرد و رفت تو. حسنی دم پنجره جلو فانوس نشسته بود و شله میخورد. خورد. ریحان رفت جلو و گفت حسنی، حسنی حسنی گفت چرا آمد اینجا؟ مشتی ریحان گفت پاشو بیا حسنی گفت بیام کجا؟ مشتی ریحان گفت محجب بار اومده میخواد بره پروست مرغ من گفتم که تو هم با او میری. حسنی گفت این وقت شب چه جوری بریم؟ مشیر گفت مش شبار میخواد بره. اگه تو هم با او بری زود برمیگردی و آن وقت تو میتونی تو خانه ما بخوابی. حسنی گفت مش شبار میذاره تو خانه شما بخوابم؟ مشیر گفت آره اما اگه روز باشه که نمیذاره. حسنی گفت خیلی خوب میام. هردو آمدند بیرون. حسنی لغمی آخر شام را که دستش بود گذاشت توی دهنش و گفت تو برو من پشت سرت میام مشتی ریحان گفت اگه بخوایی میتونیم از ده بریم بیرون از پشت باغ اربابی بزنیم بریم میدانچه پشت خانه مشتی سفر و بعد بریم کوچه اول خانه ما حسنی گفت بریم به انتهای کوچه و بیرون ده که رسیدند هوا سردتر شد روشنایی چند شم از نبی آقا به چشم میخورد مشیر ریحان گفت تو هر وقت گرسنهت بود میتونی بیای پیش من من یه چیزی برای تو خودم نگر میدارم حسنی گفت هر وقت گرست نم بشه میام پیش تو مشتی ریحان گفت بیرون ده خیلی دنج و ساکته حسنی گفت آره مشیر ریحان گفت بشینیم روی این سنگ نشستن روی سنگ بزرگی که لبه دره که افتاده بود مشیر ریحان گفت از فروس که برگشتین تو میای خانه ما میای و حسنی گفت آره که میام مشیر ریحان گفت خواب مش جبار خیلی سنگینه هر کارش بکنی بیدار نمیشه از توی تاریکی دره در مرد گندهای بیرون آمد که گوسفند لاغر و درازی را به دنبال میکشید. ماه از پارگی ابرها پیدا شد مشیر ریحان و حسنی خدا را شناختند ننه خانوم و ننه فاتمه کنار استخر که رسیدند مردها نمازشان را تمام کرده بودند اسلام رفته بود روی سنگ سیاه مردشوری و نوهه میخواند. کنار بید دو فانوس روشن بود اسلام که پیر زنها را دید ساکت شد مردها هم ساکت شدند ننه فاطمه جارو را زد به آب تربت اول بالا سر اسلام و بعد بالا سر تک تک مردها تکان داد ننه خانوم گفت میبینین چه خاکی سرمون شده قحطی و گرسنگی یک طرف و این بلای تازه هم یک طرف مشدی بابا صرفه کرد و اسلام با صدایی بلند گفت اخفر لنا رب العالمین مردها سرها را انداختند پایین و گریه کردند ننه خانوم گفت حالا چه کار میخوایید بکنید؟ زنهایی که از پشت دیوار سرک کشیده بودند خود را بالاتر کشیدند. مشتی بابا گفت اونایی که تن سعی و سالم دارند باید دست بالا بزنن و فکر اونای دیگه هم باشند. عباس گفت مشتی بابا راست میگه اما هر کس هر چی گیرش میاد میبره خانه خودش و یا میذاره دهن خودش. پسر مشتی سفر گفت عباس میخواد بگه که امروز یه مش داده به بابا علی. جماعت همه بدونین مشیحسن گفت از اینا گذشته فردا چه کار بکنیم اسلام گفت چند نفر رو جمع کنیم بفرستیم خاتون آباد که سیب زمینی و گندم بگیرن پسر سفر گفت سید ها و حسن آبادیا ها ریختن خاتون آباد و هرچی بود و نبوده جمع کردن بردن اسلام گفت ما هم میریم شاید چیزی گیرمون اومد مشیحسن گفت باید فکر گاو و هم باشیم مشتی جبار گفت صبر کن اول شکم آدمها رو سیر بکنیم بعد عباس گفت خب با چی میخواییم برین خاتون آباد اسلام گفت با گاری گاری من پس کی به درد میخوره مشتی جبار گفت کیا میخوام برن اسلام گفت من صبح زود را میفتم هر کی دلش خاص با من میاد پسر مشتی سفر گفت من با تو میام عبدالله که تازه رسیده بود گفت منم میام اسلام گفت سه نفر بیشتر که نمیتونیم بریم مشتی بابا گفت آره سه نفر بسته فردا پول جمع میکنیم و کیسه گونیم میدیم و فردا صبح در امان خدا راه میفتیم مشتی حسن گفت مشتی اسلام من پول میدم اگه پیدا کردی یه کیسه هم کاه برای گاب من بخر پسر مشی سفر گفت من اگه برم نمیذارم اسلام برای تو کاه بگیره اسلام به مشتی اشاره کرد و مشتی چیزی نگفت عبدالله گفت که راه میفتیم اسلام گفت صبح و آفتاب نزده پسر مشتی سفر گفت اگه من دیر کردم یه نفر را بفرست که از خواب بیدارم کنه اسلام گفت خیلی خوب صحبت که تمام شد همه ساکت و منتظر ماندند. نن خانوم جلوتر رفت و گفت کار درست شد. سه تا جوان میرن که سیب زمینی و آزوغه گیر بیارن. بقیه چه کار میکنن؟ بازم میرین گدایی؟ مشتی بابا گفت: چاره چیه ننه خانوم؟ هر طوری شده باید شکم و ها را سیر کنیم. ننه خانوم گفت: نه، فردا هیچ که از ده نمیره بیرون. فردا عزاداری میکنیم، دخیل میبندیم، گریه میکنیم، نوهه میخونیم. شاید حضرت دلش رحم بیاد و ما رو ببخشه، بلا رو از بیل دور بکنه. فاطمه درخت بید را نشان داد که تکه های از شاخه آویزان بود و با صدای گرفته گفت مگه نمی و شروع کرد به گریه و جارو را زد به آب تربت و بالاسر مردها تکان داد اسلام با صدای بلند گفت اخبر لنا رب العالمین. مردها سرها را انداختند پایین و زنهایی که بالای دیوار ردیف شده بودند دوباره پشت دیوار قایم شدند و صدای گریه هاشان بلند شد. ننه خانوم گفت تا عزاداری نشه آقاها ما را نمی بخشند. ننه فاطمه گفت من و ننه خانوم میریم و همه ده را آب تربت میپاشیم و بعد علمها را از علم خانه میاریم بیرون. پیرزن ها از کنار مرد ها رفتند طرف کوچه اول. صدای پاپاخ از توی باغ اربابی بلند شد که می نالید. پیرزنها پیچیدن توی کوچه و دست بزرگ بابا علی را دیدند که از دربچه ی چار دیواری آمده بود بیرون و توی خاکها چیزی را می جست. نن خانم گفت خدایا خودت رحم کن. نن فاطمه گفت اخفر لنا یا رب العالمی. از انتهای کوچه کت خدا پیدا شد که گوسفند لاغر و درازی را به دنبال خود می کشی.